تربیس وزیر با نصارا، پس بگویم من به سر نصرانیم، ای خدای رازدان میدانیم، شاه واقف گشت از ایمان من و از تأثب کرد قصد جان من، خواستم تا دینز شه پنهان کنم، آنکه دین اوست ظاهر آن کنم شاه بویی برد از اسرار من متهم شد پیش شهر گفتار من گفت گفت تو چو در نان سوزن است از دل من تا دل تو روزن است من از آن روزن بدیدم حال تو حال تو دیدم ننوشم قال تو گر نبودی جان عیسیا، چارم، او جهودانه بکردی پاورم، بهر عیسیا جان سپارم سر دهم صد هزاران منتش بر خود نهم جان دریغم نیست از عیسیا، ولیک واقفم بر علم دینش نیک نیک قیف می آمد مرا کندین پاک در میان جاهران گردد. حلاک شکر ایزد را و ایسا را که ما گشته ایمان کیش حق را رهنما. از جهود و از جهودی رستم تا به زناری میان را بستم، دور دور عیسی ای ای استی مردمان بشنوید اسرار کیش او به جان کرد باوی شاه آن کاری که گفت خلق حیران مانده زان مکر نهفت راند او را جانب نسرانیان کرد در دعوت شروع او بعد از آن